یادم نیست که و کجا همدیگر رو دیدیم ولی یادم میاد که چجوری دیدمش و اولین بار میدیدمش وقتی چشم به چشمای نازنینش خورد خودم همونجا باختم شاید همونجا بود که از یه دنیا ساختم نمیدونستم چی میشه به کجا میره از کجا میاد و چه اتفاق میاد فقط میدونستم که یه اتفاقی افتاد و همه چیز رو از کف دادم و رفت همه چیز اختیاری نداشتم به یه نگاهی کرد گفت به چشام نگاه کن آروم به چشاش نگاه کردم جرعتش رو نداشتم که درست به وسط چشاش نگاه کنم بیشتر خودم رو از دست میدادم بهم گفت پرواز بلدی درون خودم گفتم چه بی مقدمه رفت سر موضوعی که هستم به من ربط نداره گفتم نه بلد نیستم گفت میخوای پرواز یادت بدم درون خودم گفتم وای مشروع آدم استاد آدم باشه چقدر خوبه چقدر باصفاست با سرم آروم جواب دادم آره گفت پس فردا همین موقع همینجا فقط بالاتو بیار اگه بالهات پیشت نباشه نمیتونم یواش بالها کشیدم بالا بهش نشون دادم تا بالهامو دید گفت خوبه خوبه فردا همینجا میبینیم هم دیگر رو شبو نخوابیدم هی به این فکر میکردم که چیکار میتونم بکنم پروازو یاد میگیرم واقعا میخوا پرواز یاد بده یعنی جز اون هیچی نخواهد بود فردا همون موقع همونجا دوباره درگیر چشاش بودم. گفت بالا تو بیار ببینم بالا و باز کردم و دید کم کم شروع کردیم به یاد گرفتن پرواز چیزی که اصل ماجرا نبود چیزی که وقتی فکر می کردمم دربارش تو دو مرحله دوم احساساتم نسبت به اون قرار داشت اون به بالام نگاه میکرد اون به درساش نگاه میکرد من به چشمش به حرکت دستاش به صافی گردنش به موهاش به هر چیزی که به پرواز ربط نداشت نگاه میکردم روز دوم روز سوم روز چهارم، گذشت و گذشت کم کم من داشتم یاد میگرفتم که چطور باید آلام باز کنم چطور ببندم چطور با باد مخالف بدم برم بالا اینطوری بگم به مشق اون نه به عشق اون پرواز رو یاد گرفتم بعد از یاد گرفتن پرواز هر روز من پرواز می و اون نگاه می کرد. هر روز بالاتر اوج گرفتم از بالا هم یه جور دیگه دیده می شد هر چند از بالا خیلی کوچیک میدیدم اون رو ولی خیلی خیلی بزرگ بود تو دلم همه چیزش بزرگ بود رفتارش دست تکون همه چیز و همه چیزش اون شب اون روز هم تموم شد شبش با خودم فکر کردم گفتم بهش میگم که فردا میخوام با تو پرواز کنم شب وقتی همدیگه رو دیدیم گفتم میدونی گفت چیو؟ این که چرا, چرا ناراحتی؟ گفتم آره ناراحتم خب،, خب چی شده؟ گفتم من از اولم پرواز نمیگم دوست نداشتم دوست داشتم ولی پرواز با تو رو دوست داشتم من نمیخوام با اون یکی هم پرواز بشم من میخوام با تو هم پرواز بشم زیر بالهای تو اوج بگیرم با هم با باد مخالف پیروز بشین سرش انداخ پایین گفت میدونی؟ آخه نمیتونم بگم گفتم نه بگو میخوام بفهمم چرا با من پرواز نمی کنی؟ یعنی اونقدر ضعیف هستم گفت نه خیلی هم خوب پرواز می کنی. ولی من یه جورایی دوست دارم برای اولین بار پیش تو با بالهای تو پرواز کنم نه با بالهای خودم همونجا بالامو درآوردم دادم بهش بس رو هاش. گفتم خب خودت با بالای من پرواز کن گفت خب پس تو چی؟ گفتم من میخوام از پایین ببینم پروازت رو اون وقتی که رد میشی سایت میفته رو من اونو حس کنم اون خونکی باد که موقعی که سایت افتاده رو من از همه چیز برام لذت بخشتره بالهامو گرفت بدون مقدمه مثل همون اولین روز بس روشونهاش. پشت کرد به من با پا به کوه رفت ده قدم نرفته بود گفتم که چرا همینجا پرواز نمی کنی گفت نیمی خوام اوج گرفتنم و از جای پست ببینی میخوام از کوه از گله اوج بگیرم و از اونجا هستش که بدونی که عشقت چقدر به خاطر تو میتونه با پا بره بعد بال بزنم. بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتم. با خودم گفتم که همینه پس پرواز بهونه بود خودش فهمید که دوستش دارم و خودش با دهن خودش گفت که آشقم هستش. کم کم رفت تا جایی که دیگه با چشم نمیتونستم ببینمش. رفت و هیچ وقت پرواز نکرد. بعدها از خیلیا شنیدم که، نه پرواز بلد بود، نه دوست داشتن، فقط اومده بود که بالهام رو بدزدن.